حکایت، یاد دارم که در ایام جوانی گذر داشتم به کوگی و نظر با رویی، در تموزی که هرورش دهان به و سمومش مغز استخان بجوشانیدی از ضعف بشریت تا به آفتاب حجیر نگاه بردم و التجا به سایه دیواری کردم، مترقب که کسی، هر تموز از من به برد آبی فرو نشاند که همین آگاه از ظلمت دهلیز خانه روشنی بتافد. یعنی جمالی که زبان فساحت از بیان سباحت او عاجز آید. چنون که در شب تاری صبح براید یا آب حیات از ظلمت به درآید دهی برفاب بر دست و شکر آن ریخته و به عرق برآمیخته. ندانم به گلابش مطیب کرده بود یا قطری چند از گل رویش در آن چکیده فل شراب از دست نگارینش برگرفتم و بخوردم و عمر از سر گرفتم. زمان اون به قلبی لا یکاد و یسیق. رشف و ولو شربت و بهو را، خورمان فرخوند تاله را که چشم بر چنین روی افتد هر بام داد. مستمه بیدار گردد نیم شب، مست ساغی روز محشر بام داد.